دهمین عادت ضد تنبلی برنامه مرور ماهانه بهانه که از میان می رود احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است در فصل پیش از اهمیت مرور هفتگی سخن گفتیم اما باید بدانید که داشتن یک برنامه مرور ماهانه نیز به همان اندازه مهم است مرور ماهانه تنها چند ساعت از وقت شما را در هر ماه می گیرد. اما در ازمیان بردن بهانه احساس استیصال نقش بسیار موثری دارد. از جهتی مرور ماهانه به گزارشی که یک مؤسسه تجاری به سهامدارانش می‌دهد شباهت دارد. این برنامه مشخص می‌کند چه کاری مفید است، کدام فعالیت ناکاراست و چگونه می‌توان اوضاع را بهتر کرد. با مرور فعالیت‌هایتان در هر ماه می‌توانید فعالیت‌هایی که نتیجه خوبی برای شما ندارند را شناسایی کنید تا دیگر به آنها نپردازید. یک برنامه مرور ماهانه شامل چند فعالیت عمده است 1 مرور اهداف دال سین دال ز. هر چند لازم است که بر اهدافتان مروری روزانه داشته باشید اما گذاشتن سی دقیقه وقت در هر ماه برای مرور کلی اهداف نیست ضروری است مثلا ممکن است دریابید که یکی از اهداف بلند مدتتان حالا دیگر اهمیت قبل را ندارد و اکنون اهداف تازهی جلوی روی شما قرار گرفتند. شما طی مرور ماهانه تان تمام اهدافتان را بررسی خواهید کرد تا بدانید کدامشان به تغییر توسعه و یا حذف نیاز دارند. 2. مشخص کردن پروژه های جدید شما باید طی مرور ماهانه به سراغ تک تک ایده هایی که ثبت کرده اید بروید. آنها را بررسی کنید و ببینید که آیا از دل آنها پروژهی که اضافه شدنش به فهرست پروژه های شما می پدید می آید یا نه؟ 3. نوشتن فهرست پروژه ها درست مانند برنامه مرور هفتگی در اینجا هم باید یک فهرست گام به گام از ایده هایی که لازم می‌بینید اجرا شوند را بنویسید از پیامد و نتیجه ایده ها شروع کنید و بعد بدین بپردازید که برای اجرای هر ایده چه باید کرد همه چیز را در دفتر یادداشتی که در پنجمین عادت ضد تنبلی و اصف شد روی کاغذ بیاورید چهار پرسش های قبلاً قبلا در مورد تحلیل فعالیت ها از دیدگاه قانون هشتاد بیست سخن گفتیم و در اینجا باز هم به شما توصیه می کنیم که این کار را در هر جلسه مرور ماهانهتان نیز انجام بدهید. بهترین راه برای تحلیل فعالیت ها این است که سوال هایی که تیم فریس در کتابش هفته کاری چهار ساعته مطرح می کند را از خود بپرسیم. کدام 20 درصد از فعالیت‌ها؟ باعث ایجاد هشتاد درصد از مشکلات و ناشادی های من می شوند. کدام بیست درصد از فعالیت ها باعث به ثمر رسیدن هشتاد درصد از نتایج مثبت و کامیابی های من می شوند. سه فعالیت اولی که می توانم انجام دهم تا احساس کنم از زمانم به خوبی استفاده کردم و مسمر سمر بودم کدامند. بیست درصد انسان هایی که هشتاد درصد شادمانی مرا تأمین می کنند و مرا به پیش می رانند کدامند. و 20 درصد انسان‌هایی که کارشان سبب ایجاد هشتاد درصد از افسردگی و خشم من می شوند چه کسانی هستند؟ این سؤالها را ماهی یک بار از خودتان بپرسید تا کشف کنید چه چیزهایی شما را از موفقیت و انجام مرتب کارهایتان باز می‌دارند. گاهی آدمهایی در زندگی شما پیدا می شوند که به مانند خوناشام انرژی عاطفی شما را از وجودتان می مکند. بعضی وقت‌ها هم به وجود عادتهایی در زندگیتان پی می برید که شما را در حالتی ناکارا قرار می دهند. هر از گاهی هم پیش می آید که متوجه شوید پروژه هایی که روزگاری فکر می کردید مهمند در واقع توان شما برای رسیدن به نتیجه را کمتر و محدودتر می کنند. اجرای این عادت انجام مرور ماهانه به هیچ وجه سخت نیست، تنها به صرف چند ساعت وقت و صداقت در مورد اینکه در زندگیتان واقعاً چه می‌گذرد نیاز دارید. در اینجا به پروسه ساده اجرای این عادت اشاره می‌شود. 1. مقداری زمان را برای تمرکز بر این مرور ماهانه کنار بگذارید. اکثر مردم یکی از روزهای تعطیل آخر هفته را ترجیح می‌دهند. 2. تمام کاغزهایتان را به مانند آنچه در برنامه مرور هفتگی شرح داده شد بررسی کنید. 3 اهداف دال سین دال میم تان را مرور کنید تا بدانید کدامشان باید حذف شوند و کدام به تغییر یا توسعه نیاز دارند. 4 پروژه‌های تازه‌ای که مایلید در ماه آینده دنبال کنید را مشخص کنید. 5 برای هر پروژه یک فهرست پرجزئیات بنویسید. 6. از خودتان سوالات هشتاد 20 را در مورد آنچه همکنون در جریان است بپرسید و فعالیت‌هایی که تاثیر چشمگیری بر زندگیتان ندارند را حذف کنید. برنامه مرور ماهانه به شما کمک می‌کند بر آنچه در زندگیتان در حال انجام است نگاه دقیقی داشته باشید. بدین ترتیب شما نه تنها فعالیت‌های زائد را شناسایی می‌کنید بلکه فرصتی برای شروع پروژه هایی که از ذهنتان خارج شده بودند را هم پیدا می کنید این عادت را در خود پرورش دهید تا بروی فعالیت هایی که به راستی اهمیت دارند تمرکزی هرچه بیشتر داشته باشید